سال 1941 در سال 1941 هنگامی که تنها نه سال داشتم به عنوان داوطلب به سازمان جوانان هیتلری پیوستم قافل از اینکه در 10 سالگی ناگزیر باید در آن سازمان نام نویزی می کردم تولی نکشید که به فرماندهی جوخه انتخاب شدم نظامیگری در خون من بود یا دستکن چونین میاندیشیدم. از کودکی هر چیزی که ارتباطی با زندگی سربازی داشت می سودودم. نسل های من آلبن افسر بودند. پوشیدن اونیفورم نظامی آرزوی من بود و به من امنیت، احترام و احساس قدرت می‌بخشید. از دست مادرم کاری ساخته نبود. پدرم مرده بود و برادرم که نه سال از من بزرگتر بود، در جبهه روسیه میجنگید. قاره اروپا یک پارچه گوش به فرمان کسی بود که زمانی پیاده نظام بود. به محض پیوستن به سازمان جوانان هیتلری فهمیدم که اگر بخواهم از خدمت در ارتش لذت ببرم باید ترقی کنم. هرگز در ورزش موفق نبودم. اما در بازیهای میدانی، تیراندازی با تفنگ بادی، شناسایی هواپیما و همچنین تاریخ مهارت داشتم. و حتی می توانستم فرازهایی از کتاب نبرد من نوشته ی هیتلر را با آنکه از معنی آن چیزی نمیفهمیدم از بر بخوانم. اما اینها چندان اهمیتی نداشت راستش را بخواهید فرماندهی جوخه در سازمان جوانان هیتلری مرا راضی نمی کرد می بایست از اشتیاق فطری خودم به انجام کارهای استثنایی پیروی می کردم برای مثال می توانستم به سازمان جوانان نیروی دریایی هیتلری بپیوندم اما صرف نظر از ظاهر امر، هرگز اشتیاق چندانی به آب نداشتم. در حالی که هوا پیما و پرواز، همیشه در رویای من بودند. برای درخواست انتقال به سازمان جوانان نیروی هوایی هیتلری یک ماه معتل شدم. زیرا در سازمان جوانان هیتلری نیز، بروکراسی شدیدی وجود داشت. با اینکه که سن و سالم کم بود، اما به کمک تکایی به نفس زیادی که داشتم، بالاخره موفق شدم با حفظ سمت، سازمان جوانان نیروی هوایی هیتلری منتقل شدم برخلاف عقیده کنونیم باید بگویم که از عضویت در سازمان جوانان هیتلری خیلی هم لذت می بردم. البته در مدتی که اوزا نسبتاً آرام بود هدف از آموزش ما این بود که بعدها سربازان خوبی از ما بسازند این آموزش نه تنها جسمن صدمه ای به ما نزد بلکه برعکس در سال آخر جنگ بسیار هم مفید واقع شد از نظر اخلاقی اصول و موازین حاکم بر کردار شرافتمندانه به ما مخته میشد شد که حاویه بسیاری چیزهای پسندیده بود. شعار ما این بود. درست کار و آزاده باشید. در مدتی که عضو سازمان جوانان ایترری بودم، به جز مورد ناچیزی که به زودی شرخا هم داد، هیچ گونه روی و خطایی از من سر نزد. روزهای یکشنبه شنبه، تمام افراد یگان به آین اشای ربانی می رفتن. از نظر سیاسی تحت تلقین بودیم، اما به عقیده من، بیشتر مردم کشور خودشان را بزرگترین و بهترین کشورها میپندارند. ما زیاده از حد مغرور بودیم، اما کدام پسر بچه ای را میتوان یافت که وقتی ناگهان در مییابد که او را جدی میگیرند، مغرور نشود. مخصوصا وقتی به او تلقین شده باشد که کوچکترین کارش از اهمیت قابل ملاحظهی برخوردار است. نمیدانم که آیا در همه سازمان های جوانان هیتلری همین روش ها را به کار می بزدن یا نه. من فقط به ذکر تجربیات شخصی خودم می‌پردازم. اواخر تابستان 1941 یک فستیوال ورزشی در مونیخ برپا شد که ایگان های مختلف سازمان جوانان هیتلری از مناطق گوناگون آلمان در آن شرکت کرده بودند. بیشتر اوقات روز را به رقابت‌های ورزشی بوکس و مسابقه های قهرمانی دیگر می گذارندیم. اما متاسفانه گروه ما موفقیتی به دست نیاورد. در آن موقع به هر یک از یگانها یک افسر ارتش اعزام شده بود که آموزش نظامی افراد آن یگان را زیر نظر بگیرند. بیشتر این افسران مبلغ های پشت میزنشینی بودند که هرگز خط اول جبهه را ندیده بودند. افسری هم که با درجه صدفان یکمی به یگان ما اعزام شده بود یکی از همین افراد بود. او درست بعد از پایان فستیوال خواست از ماسان ببیند. همه را به خط کرد. خبر در! خوشیدی که بالای سرمان میدرخشید ناپدید شده بود و جای خود را به توده ای سیاه داده بود. وقتی اولین قطرات باران شروع به باریدن کرد او با لحنی خشک و جدی رو به ما کرد و گفت واقعا که به درد هیچ کاری نمی خورید. دیگر باران نمیبارید انگار سیل از آسمان جاری بود. در حالی که خبرداری ایستاده بودیم، آبگیرهایی در اطراف ما درست میشد. ظاهراً این آبگیرها ایده خوبی به اوداد. افراد آزاد. و بلا فاصله فرمان داد که بدویم. درست کش روی زمین خیست! برپا! بدو! از نو! و این دستورها را بارها و بارها تکرار کرد. اما در دیوانگیش هم نظم و ترتیبی وجود داشت. خیلی دقیق زمان بندی می کرد. درست موقعی که وسط یکی از آن گودال ها می رسیدیم، فرمان درازکش می داد. ما چهار فرماندهی جوخه بودیم و جای ما در ردیف اول بود. در خلال مدتی که توی گودال دراز کشیده بودیم، با دلخوری به هم دیگر نگاه می کردیم و زیر لب بد و بیراه می گفتیم. باره دیگر که فرمان درازکش داد، تعجب و ناباوری را در چهره خواندیم. به ما که روی گلولای دراز نکشیده بودیم و با جسارت به اون نگاه میکردیم خیره شد. شما های کسیف لعنتی. مگه فرمانو نشنیدید؟ البته سرکار سطفان. شنیدیم. ولی میبینید که زمین خیزه. شما جوجه های نفرمان انتظار دارید از سازمان جوانان هیتلری بمونید و یکی از این روزها لباس سربازی بپوشید؟ گوش به فرمانم سرکار سطفان. یکی از همین روزها، اما هنوز خیلی مانده. شما جوجه ها فکر میکنین کی هستید؟ درجه هاتون رو میگیرم. ما تمام نوارهای قرمز و سفید رو از لباس نظامی خود کندیم و به طرفش دراز کردیم. او از گرفتن آنها خودداری کرد و در نتیجه ما آنها را جلوی چکمه های برراغ او پرد کردیم. به چپ چپ، قدم رو. من فرمان دادم. فرمانی که چهار نفر ما را روانه خانه می کرد. دو هفته بعد نامه به این مضمون از فرماندهی حزبی ناحیه به دست مادرم رسید. شما به علت عدم درک موازین آموزش میهنی و مقررات حزبی که نشانه های آن در رفتار ناپسند فرزندتان منعکس شده است، پنجاه مارک جریمه می یادآور یاد می شود که در آینده نیز هر نو نافرمانی از مقررات حزبی جرم تلقی شده و متخلف در دادگاه ایالتی محاکمه خواهد شد. وقتی مادرم برای پرداخت جریمه مراجعه کرد به او گفتند که جریمش پرداخت شده است. ظاهرا افراد یگانی که فرماندهی یکی از جوخه های آن به عهده من بود طبق دستور فرمانده یگان برای پرداخت جریمه مادرم پول جمع کرده بودند. عمل آنها در واقع تصویر کوچکی از اصل یک نفر برای همه و همه برای یک نفر بود. ما دیگر هرگز سرکار سطفان را ندیدیم. به جای او افسر دیگری به یگان ما اعزام شد. افسری با نشان آهن درجه یک و دو و یک پای چوبی. او با رفتار بزرگمنشان خود به زودی در قلب ما جای گرفت. قد بلند و موی بوری داشت. در آفریقای جنوبی به دنیا آمده بود و پدر و مادرش پیش از آغاز جنگ او را به آلمان برگردانده بودند. سخت جدی بود و از گفتگو کردن درباره تجربیات جنگاش سرباز میزد بیتردید درباره آنچه به صلاح ما بود ایده متفاوتی داشت زیرا خودش را به خاطر آموزش نظامی ما به زحمت نمیانداخت من برای اولین بار قطععاتی از هااملت ماکاولای و کارلای را از او شنیدم که به زحمت مفهوم آنها را درک میکردم از زبان او بود که برای نخستین بار جاذبه ادبیات را کشف کردم آیا او مردی بود که سرخورده از اعمال غیر انسانی آن دوران میکوشید روح خود را با مطالعه آثار متفکران بزرگ تسکین دهد او مرد فوق العاده ای بود و شاید به همین خاطر بود که در آفری 1945 به دست اساس اس های افراتی به دار آویخته شد